ذو افسونBatchNorm از گروه جوان و فرهنگ نام خدای مهربان و توانا سلام بازرگان اونقدر بر سر زنش فریاد کشید که زنش با گریه اتاق رو ترک کرد و یک راست به سراغ خدمت کارش لوییزا رفت و با عصبانیت بون گفت چی به تو اجازه داده برای شوهرم تعریف کنی امروز توی این خونه من چیکار کردم ها اگه یه باره دیگه یه بار دیگه درباره من به شوهرم چیزی بگی؟ لویزا با بغز گفت خاالیم چ باورکن من چیزی به ارباب نگفتم. زن از این حرف خدمت کارش بیشتر عصبانی شده گفت که دروغگو حالا نشونت میدم جاسوسی چه مزهای ای میده؟ که دروغگو؟ شنیدیم بخشی از افسانه توتی بود از سرزمین اسپانیا برگرفته از کتابه ها و افسانه های اسپانیا به قلم میم سویه و ترجمه حسن سرورد اگه دوست امشب این افسانه رو بشنوید پای رادیو و برنامه هزار افسان باشید در روزگاران قدیم در شهر مادرید واقع در سرزمین اسپانیا مردی زندگی میکرد که خیلی کنجکار بود اون خیلی دلش میخواست بدونه زنش در قیاب اون توی خونه چیکار میکنه بارها از خدمتکارهای خونه پرسیده بود که زنش وقتی اون خونه نیست چیکار میکنه اما چیزی دستگیرش نمیشد این مرد که تاجر پش بود بیشتر اوقات در سفر بود و زنش همیشه از این بابت گله و شکایت میکرد و میگفت آه شوهر عزیزم وقتی تو نیستی من سعی میکنم با کار و تلاش خودم و سرگرم کنم ولی باز غمگین و ملول میشم باور کن وقتی تو میری سفر انگار انگار خورشید زندگیم غروب میکنه اما بازرگان هیچ حرفی نمیزد و فقط سرش رو تکون میداد و زیر لب میگفت روزی از روزها مرد بازرگان توی بارسلون مردی رو دید که یه توتی سفید رو برای فروش جلوی پاش گذاشته و میگه آهای چه کسی میخواد امیر شاه و امپراتور توتی ها رو بخاره من اونو به ده سکه میفروشم این توتی حرف میزنه آواز میخونه گریه میکنه هر چیزی رو میدونه همه چیز میگه چه کسی میخواد شاه توتی رو بخره بیاین جلو، آهای مرد بازرگان لحظه ایستاد فکری به خاطرش رسید و با قدم شتابزده شتاب زده به مرد فروشنده نزدیک شده و گفت آیا واقعا این توتی؟ همام رو که میبینه میتونه تعریف کنه؟ مرد فروشنده خندهی کرد و گفت <laughs> عجب سوالی میکنین آقا بهتر خودتون گوش بدین خب گانی بگو از دیشب تا به حال چه دیدی ها؟ بگو گانی برای آقا تعریف کنه توتی <tout> لحظه پلک های خاکستریش رو روی هم گذاشت و گفت دیشب دیر برگشتی خونه؟ سرستده زیاد برای انداختی. منو بیدار کردی شم باشنگ کردی و دیدن که زیر لب ناسزا میگی مثل تموم شبهایی که مرد فروشنده حرف توتی رو کرد کرده گفت ها بگذر بگذر گانی بقیهش رو بگو بقیهش رو توتی ادامه داد درانس کشیدی توی رخت خواب بدون اینکه کت رو در بیاری و صبح که بیدار شدی نگاهی به من انداختی و گفتی آیا امروز به احمقی برخورد میکنم که بتونم این توتی پی رو به قیمت گذافی؟ مرد فروشنده مشری به توتی زد و گفت بس کن توتی دروغ گوه چرا دروغ میگی گانی؟ و خطاب به مرد بازرگان گفت ببخشید قربان ببخشید من دقیقا این کلمه احمق رو به کار نبردم منظورم یه آدم غریبه یا پولدار بود این توتی کلمات رو مرد بازرگان خنده یک کوتاهی کرده گفت <تصفيق> مهم نیست من این توتی رو از شما میخرم و بعد ده سکه یه تلاش مرد و در دست مرد فروشنده گذاشت و توتی رو با خودش به خونه بازرگان نزدیک خونش که رسید خطاب به توتی گفت گانی جان خوب گوش بده ببین چی میگم گوش میکنی؟ آه. تو باید چشم و گوشت رو کاملا باز کنی و ببینی روزها که من خونه نیستم تو این خونه چه خبره فهمیدی یا نه؟ اون وقت شب که اومدم همه چیز رو مو به مو برام تعریف کن باشه گانی جان باش عزیزم توتی هم قول داد که با نهایت دقت همه اتفاقات رو دنبال کنه و شب اونا رو برای مرد بازرگان بازگو کنه مرد بازرگان وارد خونه که شد به همسرش گفت زن کجایی بیا که برات یه توتی خوشکلا آوردم که وقتی من نیستم حوصلت سر نره و باش سرگرم بشی زن از دیدن توتی خیلی خوشحال شد و از شوهرش تشکر کرد فردا اول وقت مرد بازرگان به بحانه کار از خونه بیرون رفت و شب که به خونه برگشت گانی یا همون توتی رو کناری کشید و گفت خواب گانی جان تعریف کن امروز بعد رفتن من تو این خونه چه خبر شد ها؟ توتی آهی کشید و گفت آه چی بگم؟ ارباب نگم بدتره همین تو رفتی؟ زنت گفت سفر به خیر خدا کنه گردنت بشکنه بعد هم صدا زد لویزا لویزا فورا یه فنجون بزرگ شیرکاکایی دارچیندار درست کن و با مقداری بیسکویت بیار اون تمام بیسکویت ها رو خورد و حتی یه ذرهش رو هم به من تاروف نکرد زنه شکمو بازرگان گفت مهم نیست کنی جان مهم نیست خودم هرچی بیسکویت میدم. خب حالا ادامه بده چی شد. شد توتی گفت بعد پنجری رو به حیات رو باز کرد و با صدای بلند گفت اندریکیتا اندریکیتا بعد زن جوانی وارد خونه شد خانوم بون گفت اندریکیتای عزیزم فکرش رو بکن شوهر احمقم از سفر برگشته امشب نمیتونم با تو به تاعت بیام شوهرم به قدری بی و بی که نمیخواد منو با خودش اونجا ببره. اون از بارسلون اومده و غیر از این جانور بد هم چیزی برای من هدیه نیاورده توتی سکوت کرد و گفت منظورش از جانور بد من بودم. بعد هم شروع کرد از من ایراد گرفتن. نوکم اینجوریه. چشمام اونجوریه. بعد گفت با این همه ایرادی که این توتی داره از میمون پیری که اونو برام آورده زشتر نیست میدونی منظورش از میمون پیر تو بودی؟ بازرگان با ناراحتی گفت <تصفح> لازم نیست دیگه تفسیر کنی لازم نیست بقیهش رو بگو توتی گفت اون وقت زنت ونگ دکیتا رفتن بیرون و مقداری خوراکی خوب خریدن و لویزا براشون آماده کرد وقتی قهوهشون رو خوردن پیرزنی اومد و گفت براتون یه چیز خوب پیدا کردم یه انگشتر فوقلاده که به هزار سکه اونو به شما میفروشم مرد بازرگان با تجو پرسید هزار سکه؟ توتی گفت بله هزار سکه خانمتون گفت نمیتونم این انگشتر رو بخرم چون شوهر خصیص من اجازه نمیده. از این خرچ ها بکنم پیرزن به زنتون گفت اه چه فرقی میکنه شما که بیش از پنجاه هزار سکه به من بدهکارید ولی باز هم به شما نسیه میفروشم بعد زنت قدری چونه زد و بالاخره اون انگشتر را خرید بازرگان با, با تعجب گفت گانی تو از این بابت مطمئنی اطمینان داری توطی با قاطعیت گفت البته البته که مطمئنم کاملا مطمئنم اون انگشتر الان توی کشوی میسوالتشه گفت شوهرم احمق تر از اونه که بره و کشوی میز رو بگرده بازرگان با خشم گفت که من احمق تر از اونم که برم سر کشو اره باشه نشونت میدم خب گانی بچی شد بگو توتی گفت ارباب جان بعد از رفتن اون پیر زنه و این زنت لباس قشنگی پوشی و به لویزه گفت اگه آقا برگشت بگو به کلیسه رفتم بعد هم شما اومدین خونه همین مرد بازرگان برای جایزه مقداری بیسکویت به توتی داد و اونو گذاشت لبه پنجره و خودش به سراغ زنش رد زن وقتی که همسرش رو دید فوراً شروع کرد به آه و ناله کردن و گفت "آای چقدر خستم شوهر عزیزم بالاخره اومدی؟ اینقدر کار کردم که نمیتونم چیزی بخورم اینقدر خستم که نتونستم برم بیرون بدون تو هم حوصلم سر رفته تو کجایی؟ بازرگان با عصبانیت فریاد کشید اره اره اره اره, اره. اونقدر خسته و بیرمقی که در قیاب شوهر احمقت نا نداشتی شیرکاکو بخوری و به اتفاق این ریکیتا های مختلف بخوری آره اونقدر بی حوصله که حتی به کلیسا نرفتی تو زن دروغگویی هستی خلاصه بازرگان قدر بر سر زنش فریاد کشید که زنش با گریه اتاق رو ترک کرد و یک راست به سراغ خدمتکارش لویزا رفت و با اصابانیت اون گفت چی به تو اجازه داده برای شوهرم تعریف کنی امروز توی این خونه من چیکار کردم ها؟ اگه اگه فقط یه باری یه باری دیگه در من به شوهرم چیزی بگی لویزا با بغز گفت خانونشو باور کنی من چیزی نگفت زن از این حرف خدمت کارش بیشتر عصبانی شد و گفت دخت ترک دروغگو حالا نشونت میدم جاسوسی چه مزدهی میده و بعد دو سیلی پیاپی به صورت لویزای بیچاره زد که باز شد تا شب در طول دو روز بعد زن خودش رو توی خونه سخت گرفتار نشون داد و از خونه بیرون نرفت روز سوم که یک شنبه بود مرد برای تمام روز بیرون رفت و لویزا هم اجازه گرفت که به دیدن اقوامش که در اون حوالی زندگی میکردن بره وقتی نیکیتا به دیدن زن بازرگان اومد زن خیلی خوشحال شد اونا تمام بعد از ظهر رو با هم صحبت کردن و شیرینی خوردن شب مرد بازرگان که طبق معمول از توتی پرسیده بود که امروز چه خبر بوده به زنش نشون داد که خیلی خوب میدونه اون امروز وقتش رو چه چجوری گذرانده زن به آرومی گفت امروز امریکیتا اومده بود اینجا ما تمام بعد از اون رو با هم بودیم و مقداری شیرینی خوردیم مرد گفت میدونم میدونم اون شیرینی ها رو هم امریکیتا آورده بود درسته؟ زن با تعجب نگاهی به شوهرش انداخت و گفت درسته ولی تو تو از کجا میدونی؟ مرد لبخندی زد و گفت پس میبینی که من اونقدرها که تو فکر میکنی احمق نیستم زن با خودش گفت یعنی چی؟ یعنی که این خبر رو به اون میده؟ بیچاره لویزا خدایا منو ببخش اون بیچاره جاسوسی نکرده بود ولی کاری کی ممکنه باشه مرد بازرگان گفت داری؟ چی با خودت زمزمه میکنی ها؟ زن بتوندی گفت ای, ای چی چی چی چی الان میرم برات یه قهوهی داغ بیارم زن بلند شد و رفت که برای شوهرش قهوه بیاره اون از اینکه شوهرش از سیر تا پیاز کاراش خبردار میشه خیلی عصبانی بود ولی نمیتونست کاری بکنه دردائی اون روز زن بازرگان لویزا رو صدا زده گفت لویزا, لویزا من در مورد تو برای بله من در مورد تو اشتباه کردم من نمیدونم چه کسی سیر تا پیاز ماجراهایی رو که توی خونه اتفاق میفته برای شوهرم تعریف میکنه تو تو میتونی از بزنیم این کار کاری کیه؟ ها؟ کی داره جاسوسی منو رو میکنه؟ خدمتکار فکری کرده گفت خانم جان من فکر میکنم کار کاری این توتی باشه زن با تعجب پرسید توتی؟ <تصفيق> <تصفيق> گانی رو میگی؟ لویزا یه خدمتکار گفت بله خانم اون مثل ما حرف میزنه من خودم دیدم که ارباب وقتی میاد خونه اول میره سراغ اون و با هم پچ پچ میکنن زن با عصبانیت گفت ام. اگه کار اون باشه با همین دستای خودم خفش میکنم نه نه نه شکنجش میدم که دیگه جاسوسی کسی رو نکنه زن بعد به لویزا گفت تو باید در تنبیه کردن این توط جاسوس به من کمک کنی یادت باشه اون بود که باعث شد من به صورت تو دوتا سیلی جانانه بزنم حالا وقتش که از اون انتقام بگیری چند دقیقه بعد زن و خدمتکارش لویزا توتی رو به اتاق تاریکی بردن بعد از لحظه ای توتی احساس کرد قطره‌های آب روش ریخته میشه خودش رو تکون داد و گمان کرد بارون میباره. زن جوان با آب پاش آب روی قفص پاشی توتی با خودش گفت رد باره رد باره زن با آینه و شمع روشن برخوای کور ای روی توتی انداخت و در همون حال خدمتکار توی آشپسخونه دیگی که مخصوص شستن رخت های بود رو میکوبید تا صدای رد در بیاره توتی با خودش فکر کرد طوفانه، طوفانه این برق و اونم رد رعد و طوفانه. طوفانه و نزدیک بود توتی از وحشت بیهوش بشه بالاخره همه چیز به پایان رسید توتی نیمه خفه که از فرد سرما میلرزید، جرأت نمیکرد توی قفز تکون بخوره یا حتی چشم باز کنه. ساعت بعد که مرد بازرگان به اومد به سراغ توتی رفت دید که توتی گوشه قفص داره می نرزه. توتی رو از قفص در آورد و ازش پرسید خب گانی جان کل امروز چی دیدی ها؟ توتی گفت <تصفح> با اون دوفان که فکر میکردم باعث حلاکت هم میشه <تصفح> چطور میتونستم چیزی ببینم؟ مرد بازرگان با تعجب پرسید <تصفح> توفان؟ کدوم توفان؟ چی گفت توفان امروز رو بگم بارون سیلاسایی میبارید برکورم میکرد صدای رد و برگونگست زیاد بود که هنوز سرم درد میکنه مرد بازرگان خشبین شده گفت: ای توتی دروغ گو پس کار اینه که هر شب یه مش دروغ تحویل من بدی امروز که آسمون صاف صاف بود ها؟ فکر کردی من کورم و آسمون رو نمیبینم؟ یا اونقدر احمقم که دروغای شاختار تو رو باور کنم ها؟ آه. پس تمام چیزهایی رو که تو این مدت برای من تعریف میکردی از همین نوع بوده نه؟ دروغای تو بایش شد من بزنم بزن بیچارم شک کنم نزدیک بود رابطه ما تار بشه و تو با و بانی اونی حالا که خوب فکرش رو میکنم میبینم صاحب تو حق داشته که میگفته کسی که تو رو بخره یا آدم احمقه ولی باید بدونی از این لحظه به بعد یه ثانی هم احمق نمیمونم مرد اینو گفت و توتی رو به حیات برد و اونو رها کرد بعد به سراغ زنش رفت و از اون طلب بخشش کرد و از اون روز به بعد دیگه اصلا دوست نداشت در مورد. زن وفادارش کنجکاوی به هرچ بده و بدون زنش در قیاب اون توی خونه چیکار میکنه چون به اون اعتماد کامل داشت. افثانه توتی رو از مردمان سرزمین اسپانیا براتون نقل کردم به نقل از کتاب قصه ها و افسانه های مردم اسپانیا به قلم میم سویه و ترجمه حسن صرف قد افثانه ها گرشه از سرزمین های مختلف اومدن اما وطن خاصی ندارن و متعلق به همه مردم جهانن افثانه ها در همون حال که هزاران رمز و راز در دل پنهان دارن اما ساده سمیمی و دلنشینن. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور ویراستار الهام اشتب، اجرا مهران دوستی صدابردار مهدی حدادی تیه كننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهای دیگر بدرود